سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کوب تعیید نظر حل مهمما می کرد دیدمش خرم و خندان قده باده به دست و در آن آین صد تماشا می کرد گفتم: این جام جهان بین به تو کی داد عکیب. گفت: آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود. او نمی دیدشو از دور خدا را میکرد این همه شعبده خیش که میکرد اینجا سامری پیش اصاب و ید بیزا میکرد گفت آن یار که زوگش بلند جرمش این بود که اسرار و ویدا میکرد فایزه روح القدس سرباز مدد فرماید دیگران هم بکنند چه مسیح آ میکرد گفتمش سلسله زلف گوتان اسبه چیست گفت حافظ گله‌ای از دل شیطا میکرد